امروز صبح زنی عجیب به خانه من آمد سراغ شمس تبریزی را گرفت گفتم اینجا نیست برو بعدن بیا اما گفت جایی ندارد که برود با خجالت و نگرانی پرسید می شود توی حیات منتظر بمانم؟ آن موقع بود که شک کردم. گفتم زیر زبانش را بکشم. کی هستی؟ چه کاری؟ از کجا آمدی؟ وقتی دید اصرار می کنم اش را کنار زد. صورتش زخمی بود. روی گونهاش و گردنش کبود و ورم کرده بود. معلوم بود کتک خورده. با این همه خیلی زیبا بود. در حالی که عشق میریخت دستم را گرفت و تعریف کرد. نگو حق داشتم شک بکنم. از خانه بدنام فرار کرده بود. با حالتی از خود مطمئن گفت. آن باطلاق را ترک کردم. همین که از آنجا فرار کردم به حمام رفتم کاسه کاسه آب روی سرم ریختم و خودم را چهل بار شستم. تصمیم گرفتم از این به بعد نمیگذارم هیچ مردی نزدیکم بشود تا آخرین نفسم. بقیه عمرم را وقف خدا کردهام نمیدانستم چه بگویم. چقدر هم جوان و ظریف بود چطور جرأت کرده بود هم چه کاری بکند چون این جسارتی را از کجا پیدا کرده بود چطور توانسته بود وضعیتی را که بهش عادت کرده بود رها بکند راستش حیرت کرده بودم دلم برایش کباب شد چشمهای بادامیش مرا یاد مریم مقدس انداخت. از طرفی هم نمیخواستم زنی در خانه ام باشد که راه بد افتاده بوده. با این حال نتوانستم از خانه بیرونش کنم. اجازه دادم توی حیات منتظر بماند. همین قدر از دستم برمیآمد. پای دیوار چنباتمه زد. مثل مجسمه ای مرمری که با اندوه تراشیده شده باشد نگاهش را به نخته ای دوخت و شروع کرد به انتظار کشیدن ساعتی بعد شمس و مولوی از پیاده روی برگشتند. دوان دوان پیششان رفتم و قضیه را تعریف کردم مولانا حیرت زده پرسید گفتی توی حیات زنی بدکاره هست؟ گفتم: « بله، میگوید برای پیدا کردن خدا آنجا را ترک کرده. یا دیوانه است یا اینکه زن بیچاره خلاصه من که درست نفهمیدم. نمیدانم کیست و چه کار است؟ شمس در حالی که چشمهایش می خندید و در صدایش هم شادی موج میزد گفت: «من می دانم. حتما گل کویر است. بار بالاخره موفق شد. زن بینوا را چرا توی حیات نگهداشتی؟ بگو بیاید تو. اعتراض کنان گفتم: آن وقت در و همسایه چه میگویند؟ همین طوری هم شب و روز ما را میپایند؟ و پشت سرمان حرف میزنند آن وقت بیاییم با هم زنی زیر یک سقف زندگی کنیم و به مردم بهانه شایع پراکنی بدهیم شمس سرش را بلند کرد و به آسمان نگاه کرد خوب کرا مگر همهمان زیر یک سقف زندگی نمی کنیم. شاه و گدا با کره فاحشه، عالم و جاهل همگی این جایی زیر این گمبت کبود. بحث کردن با شمس غیر ممکن است. برای هر چیزی جوابی دارد. من چطور می توانم از پسش برایم؟ ناچار زن را به خانه دعوت کردم. از طرف دیگر خدا خدا می کردم از همسایه ها کسی نبیندمان. گل کویر همین که داخل شد و چشمش به شمس افتاد، دوید تا دستش را ببوسد. شمس هم که نیشش تا بناگوشش باز شده بود، انگار که با دوستی قدیمی حرف بزند گفت، خوش آمدی، صفا آوردی، دیگر به آن مزبلدان پا نمیگذاری. آن صفحه زندگیت کلا به آخر رسید. الله قدم به قدم حق تو را به خودش نزدیک می کند گل کبیر در حالی که اشک از چشمانش سرازیر بود گفت رئیس خونسا ولم نمی کند که حتما خیلی وقت است کل شغال را پیم فرستاده شما خبر ندارید او چه آدم است. شمس حرف زن جوان را قطع کرد، گفت، به این چیزها فکر نکن، خیالت راحت باشد، خدایی که از آن باطلاق بیرونت آورد، از مجسارتی را که لازمه این کار است به تو داد، در را به رویت باز کرد و وسیلهی فراهم آورد تا از آنجا بیرون بیایی، البته راحت را هم هموار خواهد کرد. قاعده سی و در این دنیا که همه میکوشند چیزی شوند تو هیچ شو مقصدت فنا باشد انسان باید مثل گلدان باشد همانطور که در گلدان نه نشکل ظاهر بلکه خلاع درون مهم است در انسان نیز نزن منیت بلکه معرفت هیچ بودن اهمیت دارد هوا که تاریک شد برای گل کبیر رخت پهن کردم دختر بیچاره از بس خسته بود همین که سرش را روی بالش گذاشت خوابش برد به اتاق که برگشتم دیدم مولوی و شمس سخت مشغول صحبتن. شمس چشمش که به من افتاد لبخند زد و گفت که را تو را به آیینمان دعوت می کنی. پرسیدم چه آینی؟ گفت رقصی روحانی و معنوی برگزار خواهیم کرد. است که پیش از این نظیرش را ندیده ای. موسیقی و پایکوبی و دستفشانی و دعا خواهد بود. همه با هم عاشقانه پروردگار را ذکر خواهیم گفت با وحشت به شوهرم نگاه کردم چه موسیقی چه رقصی منظورش چه بود گفتم مولانا تو عالم محترمی هستی نرقا و مردم درباره ات چه فکری میکنند اصلا اعتبار و آبرویت را در نظر نمیگیری؟ اگر به فکر خودت نیستی، به فکر خانوادت باش. حس می‌کردم صورتم از عصبانیت سرخ شده. مولانا گفت: تو نگران نباش، کررا. خیلی وقت بود با شمس درباره این مسئله فکر می‌کردی. رقص درویش‌های چرخزن را اجرا خواهیم کرد. اسمش سما است. هر کس در آرزوی عشق الهی است، مهمان ما است. می‌خواهیم تدارک ببینیم. از این به بعد هر روز کار می‌کنیم. هایم شروع کرد به زغزغ کردن. به شمس گفتم اگر کسی خوشش نیاید، آن وقت چه اگر کسی نپسندد همه که برای رقص ارزش قائل نیستند اینجور جور کارها را تحقیر می‌کنند اقلا الان این کار را نکنید بگذارید برای بعد ممکن است بگذارید کمی زمان بگذرد شمس شانه‌هایش را تکان داد گفت برای خدا هم همه ارزش قائل نیستند. ایمان آوردن به او را هم باید بگذاریم برای بعد؟ پیغمبرمان را هم همه دوست ندارند. ذکر او را هم باید به تأخیر بیندازیم؟ عشق را هم همه محترم نمی شمارند. پس آشق شدن را هم بگذاریم برای بعد؟ نفسی امیخ کشیدم، به این مرد چه میتوانستم بگویم، این طوری بحث هم به پایان رسید، حتی یک کلمه برای گفتن نمانده بود،